داستان شاهزاد قناری پادشاهی بود که یه دختر داشت. مادر این دختر مرده بود و ملکه جدید به دختر حسودی می کرد. همیشه از بعدیهاش پیش پادشاه می گفت. دختر بیچاره از خودش دفاع می کرد و هیچ وقت هم گناه ها رو گردن نمی گرفت. اما زن جدید پادشاه اونقدر گفت و گفت تا پادشاه با وجود اینکه دخترش رو خیلی دوست داشت، عقلش رو از دست داد و به گفتههای ملکه جدید اعتماد کرد. اون رو تصمیم گرفتن که دختر رو از قصد بیرون کنن. پادشاه گفت یه جای خوبی رو باید در نظر بگیریم که دخترمون رو بذاریم تا اونجا زندگی کنه. چون هیچ وقت اجازه نمیدم که کسی باهاش رفتاری کنه. ملکه جدیدم گفت: خیالت از این بابت راحت باشه. اصلا فکرشو نکن. و بعد از اون دختر پادشاه توی قلعه وسط جنگل حبس شد. چند تا از خدمتکارای دربار رو هم گذاشتن پیش شاستاد خانوم تا مراقبش باشه و دستور دادن که اصلا بهش اجازه ندن تا جوری پنجره هم بره. یه اتاق تر و تمیز گذاشتن در اختیار شاستاد خانوم. هرچی هم که میخواست براش مهیا بود، فقط نمیتونست بیرون بره خدمتکارا با وجود حقوق خوبی که میگرفتن سرشون به کار خودشون بود اصلا به شاهزاده خانم توجه نمیکردن بعد از مدتی پادشاه از زنش میپرسید حال دخترمون چطوره چیکار میکنه و ملکه برای اینکه نشون بده دل و پسه رفت به دیدن دختره دمه در قلعه از کالسکه پیاده شد خدمتکارو دویدن به طرفش تا بهش بگن که خیالش راحت باشه. دختره حالش خوبه و خیلی هم سر حاله با وجود این ملکه اومد تو اتاق شاهصاد خانم یه نگاهی بهش انداخت و گفت خوب خوبه حالت خیلی خوبه. چیزی هم که کم و نداری. میبینم که رنگ و روتم خیلی خوبه. خوش بگذره و ازش خداحافظی کرد و رفت. رفت پیش پادشاه و بهش گفت هیچ وقت دخترمون رو اینقدر خوشحال و سرحال ندیده بودن. اما شاهزاده خانم با خدمتکارهی که حتی نگاهش هم نمی روزها رو همیشه تنها و غمگین جلوی پنجره می گذرند. روبروی پنجره یه جنگل بود. شاهزاده خانم تمام روز جز نوک درخت ها و عبر ها و مسیر شکارچی که از اونجا رد می شدن هیچ چیز دیگه ای نمیدید؟ دید. یه روز پسر یه پادشاه از اون مسیر گذشت. پسر پادشاه دنبال گرازی بود که اونو شکار کرده بود. پسر پادشاه اون روز از کنار قلعه ای که شاهصاد خانم توش حبس شده بود گذشت. همیشه از اون مسیر عبور می کرد. ولی اصلا ندیده بود که توی اون قلعه کسی زندگی بکنه. ولی اون روز با دیدن دود بخاری شیشه های تر و تمیز کرد. همینطور داشت نگاه میکرد که جلوی یکی از پنجره ها دختر قشنگی رو دید که داره بهش لبخند میزنه. دخترم شاهزاده رو دید. شاهزاده لباس زرد و چکمه های مخصوص شکار پوشیده بود. تیروکمونش هم و دوشش بود خلاصه شاهزاده و شاهزاده خانوم به همدیگه لبخند زدن یک ساعت ایستاده بودن و همدیگه رو نگاه میکردن فاصله بین اونها خیلی زیاد بود فردای اون روز پسر پادشاه لباس زرد بتن به بحانه رفتن به شکار دوباره رفت اونجا ایستاد و چند ساعت دوباره همدیگه رو نگاه کردن این دفعه علاوه بر اینکه به همدیگه لبخند می زدن با ایما و اشاره دستم برای همدیگه تکون می دادن. این کار دیگه برای شاهزاده عادی شده بود هر روز می رفت کنار قلعه و ساعتها وای می و به شاهزاده خانم نگاه می کرد. روز چهارم شاهزاده طبق معمول رفته بود اونجا همون لحظه متوجه شد که جادوگری که پشت درخت ایستاده و داره بهش نگاه میکنه، از کارهای شاهزاده خندش گرفت و شروع کرد به خندیدن. شاهزاده گفت: تو کی هستی؟ از چی خندت گرفته؟ جادوگره گفت: از اینکه هیچ وقت دوتا عاشق اینقدر احمق ندیده بودم شما خیلی از هم دیگه دورین. شاهزاده گفت: کاش میدونستم باید چیکار کنم تا بهش برسم ما در بزرگ. جادوگره گفت ازتون خوشم میاد. به خاطر همین بهتون کمک میکنم. در غرعه رو زود زد و یک کتاب بزرگ کهنه و زرد و کثیف به خدمتکارا داد و گفت که هدیه اونه به شاهزاده خانم تا با خوندنش سرگرم بشه. خدمتکارا کتاب رو از جادوگره گرفتند و به شاهزاد خانم دادن. شاسده خانوم فوری بازش کرد و خوند. توی کتاب نوشته بود این یه کتاب جادوگریه. اگه در جهت درست ورقش بزنی آدم به شکل پرنده در میاد. اگرم برعکس ورقش بزنی پرنده به شکل آدم در میاد. دختر پادشاه دوید رفت جلوی پنجره. کتاب و گذاشت کنار پنجره و با عجرش شروع کرد به ورق زدن. از اون طرف جوون زردپوش ایستاده بود وسط راه و نگاه میکرد یه دفعه دستای جوون زردپوش به حرکت درآمد بالهاش تکون داد و به شکل یک قناری درآمد قناری پرید و رفت بالاتر از نوک درختها و بعدم به طرف دختر پرواز کرد کنار پنجره نشست شاهزاده خانم نتونست خودشو کنترل کنه و قناری رو کف دستاش گرفته بود و روی پرهاشو میبوسید اما بعد یادش اومد که این همون جوونه است از کارش خجالت کشید و بعدا با خودش گفت الان وقتشه که دیگه به حالت قبل درش بیارم کتاب و برداشت و برعکس ورق زد قناری پرهای زردش رو مرتب کرد و بالهاش تکون داد و بازوهاش و حرکت داد و دوباره به شکل جوون زردپوش با چکمه های شکاریه به پا درآمد. جوره شاهزاده خانم زانو زد و گفت من به شما علاقه شدم. دیگه شب شده بود. شاهزاده خانم به آرومی شروع کرد به ورق زدن کتاب. جوون همونطور که تو چشمای شاهزاده خانم نگاه میکرد دوباره به شکل قناری در اومد و کنار پنجره نشست بعدم پر زد و رفت وقتی قناری روی زمین رسید دوباره دخترک کتاب و برعکس ورق زد قناری به شکل شاهزاده درومد شاهزاده پاهاش رو روی زمین گذاشت برای سگاشییه سوت زد و بعد هم دوباره به طرف پنجره نگاه کرد و با دخترک خداحافظی کرد. اینجوری بود که کتاب برای به پرواز در وردن شاهزاده به طرف پنجره اتاق شاهزاده خانوم و به شکل آدم در هر روز ورق می‌خورد. شاهزاده خانوم این کتاب رو هر روز ورق می‌زد. هر روز با شاهزاده دیدار می کرد. هیچ وقت اینقدر سرحال نبودند. طبق معمول یه روز ملکه اومد تا به دخترخوندهش سر بزنه. هر وقتم هم میماد بهش میگفت حالت خوبه دیگه. میبینم که لاغر شدی اما مهم نیست. هیچ وقت انقدر سرحال نبودی. چرخی توی اتاق زد و دقت میگرد که همه چیز سر جاش باشه. پنجره رو باز کرد و بیرون رو نگاه کرد. شاهزاده که لباس مرتب پوشیده بود و با سرکاش به طرف قلعه می رو دید. با خودش گفت اگه این دختره بخواد برای شاهزاده دلبری کنه خودم حالیش میکنم. کنم. از دختره خواست تا بره براش یه دیوان آبغند آماده کنه. بعد هم با عجله پنج شیش تا سنجاق مورو که روی سرش بود در آورد رو و روی بالش طوری گذاشت که نوکش به سمت بالا باشه. اما دیده نشه. بعدم گفت حالا حالیت میکنم که از این بعد یاد بگیری که دیگه جوره پنجره نری. همون لحظه شاهزاده خانم با آب قند برگشت. ملکه بهش گفت دیگه تشنم نیست. بهتر خودتونو بخوریش. من باید برگردم پیش پدرت. چیزی احتیاج نداری؟ و بعدم رفت. تا کالسکه ملکه دور شد دختر تون دوتون کتابو برق زد شاهزاده طبق معمود تبدیل شد به یه قناری به طرف پنجره پرید مثل یه تیر نشست روی بالشت. اما بلا فاصله جیغ خیلی بلندی از درد کشید و پرای زردش پر از خون شد سنجاقای توی بالشت توی سینهش فرو رفته بود قناری بیچاره بالهاشو با ناامیدی تکون داد و دوباره پرواز کرد و خودش رو سپورت دست باد. رفت پایین با روی زمین نشست. شاهزاده خانم وحشت زده بدون اینکه چیزی از موضوع بدونه به سرعت شروع کرد به برعکس و زدن کتاب. به امید اون که اونو به شکل آدم در بیاره تا زخمش از بین بره. اما افسوس. شاهزاده از خونی که از روی زخمهای عمیقش بیرون میومد تمام تنش و لباساش خیس شده بود. ناراحت و بی روی زمین افتاد. سکهای شاهزاده اون رو محاصرهش کردند. با سر و صدایی که رو انداخته بودن شکارچی های دیگه هم سر رسیدن. و شاهزاده رو از روی زمین بلند کردند و به طرف قصرش بردن. بعد از چند روز اثری از خوب شدن شاهزاده نبود. درد امونش رو بریده بود. زخمهاش خوب نمی شدن. و شاهزاده بیچاره همینطور درد میکشید. پادشاه دستور داد همه جا اعلامیه پخش کنن و قول داد هر کسی بتونه شاهزاده رو خوب کنه کلی طلا و جواهر بهش میده. اما کسی پیدا نشد. از اون طرف شاهزاده خانم بیچاره از ناراحتی هر روز لاغر و لاغرتر میشد. یه روز تصمیم گرفت با ملافه هایی که توی اتاقشه، نوارهای باریک بلندی رو مثل تناب درست کنه و به هم گره بزنه تا به کمک اون بتونه از پنجره بیاد پایین. موفق شد که این کارو انجام بده. وقتی از پنجره پایین اومد همه جا تاریک بود. شاهزاده خانم از تاریکی و صدای زوزه گرکا می ترسید. با خودش گفت بهتر تا صبح سب کنم. درخت بلوت کهنسالی اونجا بود که توش خالی بود. شاهزاده خانم تصمیم گرفت که توی اون درخت خودش رو پنهون کنه. انقدر خسته بود که از خستگی خوابش گرفت. وقتی که بیدار شد، هوا هنوز تاریک تاریک بود. به نظرش اومد که صدای سوت میشنوه. گوششو گوشش رو تیز کرد و دوباره صدای سوت رو شنید. سوت ثبت، سوت چهارم. و یه دفعه شوله شمی رو دید که به طرفش نزدیک میشه. وقتی خوب دقت کرد دید که چهار تا جادوگر بودن که از چهار طرف دنیا می اومدن و زیر درخت بلوط با هم قرار داشتن. شاهزاد خانوم از شکافی که روی درخت بود، چهار تا پیرزن جادوگر رو دید که با هم هنهله می کردند و توی دستاشون هم شم داشتن. پیرزن ها پای درخت برود رسیدن، برای خودشون آتیش روشن کردن، نشستن تا خودشون رو گرم کنن. برای شامشونم چند تا خفاش کباب کردن. وقتی دلی از ازاده در شروع کردن از هم سوال و جواب که چه چیزای جالبی توی دنیا دیدن. یکی میگفت من سلطان ترک ها رو دیدم که 20 تا زن تازه برای خودش گرفته بود. اون یکی میگفت من خاقان چینی ها رو دیدم که گذاشته بود گیسپافتاش سه متر بشه پیرزن سوم گفت من پادشاه آدمخارها رو دیدم که اشتباهی نوکراش هم خورده بود و جادوگر آخر گفت من پادشاهی همین نزدیکی ها دیدم که پسرش مریضه و هیچ هیشکی هم نمیدونه و چجوری درمونش کنه و قدم من میدونن جادوگرای دیگه پرسیدن چطوری خوب میشه؟ اونم برگشت و گفت: یه آجری توی اتاقشه که لقه. کافی اون آجر رو بردارن، چون زیرش شیشه کوچیکیه و توی اون شیشه مرهمیه که هر زخمی رو خوب میکنه. شاهزاده خانم که توی درخت قایم شده بود، نزدیک بود از خوشحالی جیغ بکشه. اما برای اینکه سکوت کنه انگشتش انگشتشو گاز میگرفت. جادوگرا، هر چی رو که باید میگفتند گفتند و هر کدوم راه خودشون رو گرفتند و رفتند. بعد از اینکه رفتن رفتند شاهصاد خانو از درخت بیرون پرید. دیگه صبح شده بود. به طرف شهر به راه افتاد. از اولین مغازه سمساری یک کیف کهنه برای تبابت خودشو یه اینکم خرید. بعد رفت در قصر پادشاه و کوبید. خدمتکارا وقتی چشمشون به دخترک افتاد نمیخواستن که اونو راه بدن تا بیاد وارد قصد بشه. اما پادشاه گفت خطری که برای پسر بیچاره من نداره چون دیگه کار از کار گذشته بذارید اونم بیاد امتحان کنه. شاهزاده خانم وقتی وارد قصد شد از پادشاه خواست که اونو با پسرش تنها بذاره. وقتی شاهزاده خانم رفت بالای سر شاهزاده شخصت مریض و بیهوش توی تخت خوابش ناله میکرد. کرد. شده خانم دلش میخواست های های گریه کنه. اما خودشو کنترل کرد. چون باید با عجله دستور جادوگرا رو اجرا کرد. به خاطر همین شروع کرد به قدم زدن توی اتاق. تا بالاخره اخره آجر لقو پیدا کرد. آجر رو برداشت. شیشه مرهمو پیدا کرد و مشغول مالیدن مرهم روی زخم های شد. تا مرهم رو روی زخم های می‌مالید ساده زخم می, می شدن. بعد از اینکه که کارش تموم شد شاد و خوشحال پادشاه و صدا کرد و پادشاه هم بعد از دیدن پسرش که صحیح و سالم شده خیلی خوشحال شد. بهش گفت ای دختر هر چی که بخوای بهت میدم تموم ثروت خزانه دولت مال تو باشه اما دخترک گفت من پول نمیخوام فقط سپر شاهزاده که نشون خانوادگی داره پرچم شاهزاده و همون جریقه زردی که سوراخ و خونیه اونارو رو به من بدین و وقتی هم که این تا چیز رو گرفت از پادشاه خداحافظی کرد و رفت پسر پادشاه بعد از سه روز که حالش خوب خوب شده بود دوباره راه افتاد واسه شکار. وقتی کنار قلعه وسط جنگل رسید اصلا نگاهی به طرف پنجره شاهزاده خانم ننداخت شاهزاده خانم فوری کتابشو ورق زد. شاهزاده با اینکه خیلی عصبانی بود اما چاره ای نداشت که به شکل قناری در بیاد و به طرف اتاق شاهزاده خانم پرواز کنه. وقتی پیش دخترک رسید بهش گفت بذار برم برات بس نبود که با سوزنات زخمیم کردی و باعث شدی من این همه درد رو تحمل کنم در واقع شاهزاده فکر میکرد که باعث بانی همه اون و زخم هایی که کشیده دختر بیچاره بوده با شنیدن این حرفها چیزی نمونده بود که شاهزاده خانم از حال بره دخترک که بیچاره به شاهزاده گفت اما من تو رو نجات دادم. من بودم که خوبت کردم. ولی شاهزاده گفت نخیل. کسی که منو نجات داد یه پزشگی غریبه بود که حتی دستمزدم نگرفته و به جای دستمزش نشون پادشاهی و پرچم منو و خونی من رو از من گرفته. همون موقع دخترک همه که که بابت دستمز گرفته بود رو پیش شاهزاده آورد و گفت این من بودم که تو رو نجات دادم. سنجاقایی هم که تو رو زخمی کرده بودن کار ملکه بوده و من بی تقصیرم. شاهزاده؟ با تعجب فقط به شاهزاده خانم نگاه می کرد. هیچ وقت اینقدر قشنگ به نظرش نرسیده بود. همون لحظه از دخترک تقاضای بخشش کرد. بعد سری به قصد برگشت و پدرش گفت که می خواد با دختر قلعه توی جنگل ازدواج کنه. پدرش گفت تو فقط باید با یه شاهزاده خانم ازدواج کنی. و پسرش هم گفت با دختری عروسی میکنم که زندگی منو نجات داده. خلاصه، پادشاه جشن عروسی رو با دعوت همه پادشاه ها و ملکه های دوروبر دید. پدر شاهزاده خانوم هم بدونم که چیزی بدونه به این عروسی دعوت شده بود. وقتی عروس دید جلو اومد و فریاد زد دخترم. پادشاه میزبانم گفت چی؟ یعنی همسر پسر من دختر شماست؟ پس چرا به ما چیزی نگفته؟ شهستاد خانم گفت من این مرد رو پدر خودم نمیدونم چون به زنش اجازه داده که منو زندونی کنه. و بعد هم ملکه رو با انگوش نشون داد پدرش آساد خانوم با شنیدن این همه مسیبت که دخترش کشیده بود خیلی ناراحت و حسابانی شد و همونجا دستور داد تا ملکه رو زندانی کنن بعد از اون جشن به خوبی و خوشی برگزار شد همه خوشحال بودن به استثنای ملکه بخت برگشته که زندانی شده بود